علم تره کیفه این تخویف دنیاوی هست یعنی کسانی که مغرور مال هستند نه تنها در آخرت خدا عذابشون میده در دنیا هم خدا گوشمالیشون میده مثل ابرهه مثل اصحاب فیل که مست قدرت بودند مغرور قدرت خودشون بودند آمدن که خانه خدا را تخریب بکنند ابرهه که پادشاه حبشه بود این عبره در واقع در یمن ای ساخت و مرکزی برای توجه مردم ساخت بسیاری الان مراکز را برای توجه مردم می به منظور درآمد که مردم برای اونجا نظر و نیاز بدن اونجا پول زیاد بدن میخوان بالاخره جیبی برای خودشون بدوزند و درست کنند تا از این طریق نظورات مردم را صدقات مردم را جمع کنند در واقع اکثر اینها مغازه هستند منبع درآمد هستند و بعضی افراد هستند که مثل پادشاهان رؤسا برای نام و شهرت و برای اینکه توجهات را به خود جلب کنند چنین مراکزی درست میکنند لذا در اون زمان قبلی توجه انسانها بیت الله بود و بیت الله با توجه اینکه از یادگارهای سیدنا ابراهیم علیہ السلام بود در میان عربها و بالخصوص فرزندان اسماعیل شما می که فرزندان اسماعیل هم در سرزمین حجاز و هم در سرزمین یمن منتشر بودند بسیاری از فرزندان اسماعیل به یمن رفته بودند عرب های اصیل در همین دو منطقه بودند بقیه مناطقی که امروز عرب هستند مثل مصر هست و شام و سوریه فلسطین اردن عراق همه اینها عربی نبودند اینها عجم بودند بعدا وقتی که اسلام آمد اینها نه تنها دینشون عوض نشد بلکه فرهنگشون لباسشون ملیتشون اصلا عربی شد از بس که از اسلام استقبال کردند بنابراین این اینهایی که به خدمت شما می‌رفتند به طرف اون خانه‌ای که ابراهیم و اسماعیل درست کرده بودند و دلداده اون خانه بودند نمی‌خواست این کار بشه لذات چیزی دیگه درست کرد و بعض هم دید که مردم به اون سمتسو توجهی ندارند قصد کرد که بره اونو تخریب بکنه وقتی که با لشکرش که لشکر فیل بود و فیلها بیشتر در های آفریقا هستند حبشه هم جز آفریقا هست لذا اونها فیل اونقدر زیاد بود که فیلها جز ابزار استفاده اونها هم برای سواری هم برای جنگ خصوص قدیم از فیل ها به عنوان جنگ مثل امروزه که از اسباب استفاده میشه از فیلها استفاده می هر جایی که سپاه فیل می رفت دیگه همه چیز را لح می کرد نابود میکرد. خود این نجاشی فیلی داشت اسم فیلش محمود بود لذا خودش بر اون محمود قرار گرفت و حرکت کرد رفت به طرف چی؟ به طرف بیت الله و میخواست که از بین ببرد ابتدا شطورهای عبد المطلب را داستان معروف است اونها را گرفت و عبدالمطلب بعداً بعدا آمد برای مذاکره گفت من دنبال شطرها مو آمدم بهش خندید که من نام و آوازه تو را شنیده بودم فکر کردم که تو چقدر قدرت داری معلوم میشه خیلی ترسو هستی تو دنبال شطرانت آمدی گفت بله شطرها هم ربی رب دارند اون هم ربی رب دارد من رب ابل هستم اون خودش ربی رب دارد در همون زمان جاہلیت یک اعتقاد خاصی به بیت, بیت الله بود لذا با این عقیده گفت که شما بل اخر اون ربش خودش دفاع بکنه من رب هستم من از چطورهایم دفاع میکنم لذا شطور را پس گرفت و راهش را کنار کشید جلوش را گفت نمیتونم بگیرم بل یک لشکر بسیار بزرگی آمد بود اینجا بود که رب بیت رب هذا البيت اینجا به هاش محمد و این مغرور متکبر را که افتخارش بر مال بود بر جاه بود بر پست بود بر قدرتش بود خدای تعالی متکبرین را زود بگیره لذا الله تعالی ابابیل را فرستاد که ابابیل جمع اباله هست میگویند اباله پرنده ای را میگویند که از گنجشک کوچکتر است بعضی ها ترجمه به پرستو میکنند بالاخره از گنجشک کوچکتر است این اباله یا ابابیل ستا سنگریزه کوچولو داشتند اما اینا سنگریزه نبودند اینها بمبهای های بودند اینا به بودن. هر یکی که میخوردند اصابت میکردند انفجاری ایجاد میکردند چون قرآن میگه فجعلهم کعصف معکول مثل این که که جویده بشه جویده بشه بعدا این گوسفند سیر دلش نیاید که این که را بخوره یا مریض باشه که را میندازه بیرون این له شده و این تر هست و این که انسان ازش بدش میاد اینها وقتی که بهشون خوردند و اصابت کردند اینها مثل چی شدند؟ مثل همون کاه جویده شده و خورده شده روی زمین افتادند خدا تعالی متلاشیشون کرد به وسیله این پرنده ها الله عزوجل قربان رب و قدرت رب برم که الله تعالی می توانست اینها را این متکبران را به وسیله چیزهای بزرگتری بکشد اما هر کسی که تکبر میکند خدا تعالی به وسیله بس چیز بسیار حقیر و ذلیل و کوچک مثل پشه مثل کنم که انکبوت مثل ابابیل به وسیله اونها که یعنی تو ارزشش را نداری که برای تو یه چیز بزرگتری فرستاده بشه خدا نشان میده که این تکبرش دروغیم بود اینکه خودش را بزرگ میدانست این بزرگ نبود از کوچک هم کوچکتر بود لذا الله تعالا آنوا عقیر اینجا اشاره فرموده آلمن ترا پس این نمونه ای هست از مغرور شدن بر پست و مال و همچنین این نمونه ای از تخویف و عذاب دنیاست برای کسانی که با غرور با حق و اهل حق و با توحید مبارزه می کنند این بلند شده بود که مرکز توحید را از بین ببرد الله می فرماید الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل ندید چنان کرد ربت با اصحاب فیل چطور چتور معامله کرد چطور بر کرد الم می جعل فی في تضليل آیا قرار نداد مکر انهارا توت انهارا فی تظلیل فی تظلیل یعنی خنصا تظلیل گمراهی را میگن یعنی خنصا کرد الله تعالی نقش بر آب کرد توت ایشان را و ارسل علیهم طیرن ابابیل و فرستاد بر آنان پرنده ابابیل البته بعضی میگه ابابیل معنی جماعت یعنی جماعتی از پرندگان فرستاد که یعنی پرنده را مشخص نکرده بعض میگه نه بالا نویی از اس پرنده است ترمیهم به من سجیل انها را میزدند به وسیله سنگهایی از سجیل یعنی خود سنگ خالص هم نبود سنگ خاک بود سنگ کلوخ بود که سنگ کلوخ و خاک و گل درد نداره به کسی بزنی متلاشی میشه و طرف دردش نمیاد اما خدای تعالی خاصیتی تو اینها گذاشته بود که فجعلهم کعصف معکول قرار داد اونها را مثل کاه جویده شده و خورده شده لذا الله تعالی چنان اونها را از بین برد و نابود کرد بعد از اون این سوره بعدی با سوره قبلی ربط داره حتی بسیاری معتقدن که لی ایلاف قریشن این لام متعلق فجع لهم هست چون که خدای تعالی اونها را از بین برد بعد از اون قریش راحت آزادانه هر جا کوچ میکرد اینجا برو برای بهار اونجا برو چادرت را دیگه خطری نبود یعنی بعد از این که خدای تعالی این لشکر فیل را و لشکر ابره را نابود کرد تمام مردم دنیا از باشندگان مکه می ترسیدند می اینها مال شهری هستند که خدا همیشون هست. هر کسی که با اینها دشمنی بکنه اونها فکر میکردند که این تقدس و این ارزش مال مردم مکه هست. فکر میکردن مال مردم هست. غافل از این که الله عزوجل به خاطر مرکز توحید که دشمنان توحید میخواستن از بینش ببرند خدای تعالی این رفتار را با اونها کرد لذا بعد از اون حتی راهزنها و دوزدها با اهل مکی کار نداشتند هر جا کاروان مکیها ها میرفت می از کجا آمده می گفتن از مکه گفتم برین دزد هم می ترسید می گفت ما اگر تعرض بکنیم ما کجا او اون اصحاب فیل کجا اونا که خدا اونطور له کرد ما را چی کار حتی مردم بلاد دیگر گاهی خودشون را نسبت می به اهل مکه می گفتن ما اهل مکه هستیم تا از شر دزدها راهزنها ظالمها در امان ببانند